سامان بالاخره من را میبیند. به من توجه میکند. چشمک میزند و با شنگول و منگول خداحافظی میکند. چه عجب خانم پیشفند آمد سفارش مخصوصش را گرفت و رفت. نوجوان جان من تازه دارد می آید پیش عروسکش. از آن دور اینطوری نگاهم نگاه هم نکن. آشقت میشه و سلام ندایی، سلام گل پسر. وقت کردیه نگاه نگاهم به ما بکن. چه درخواست خوبی؟ تا خود صبح هم اینجا می نشینم و هی نگاهت میکنم. کنم. من که از خودم است، فکر می کنی خسته می شوم؟ پسرها اگر این زبان دو متر و نیمی را نداشتن چیکار میکردند؟ من به حلال و حرام اعتقاد دارم. فقط یک نظر. حالا کی بودند آنها؟ دوست داری برویم سر میزشان بنشینیم؟ سپیده و عاشقم حرف از بیوفایی می زند. با کلی حیجان کاذب و غیر کاذب آمدم تو را ببینم و تو چشمم روشن چشم و دلم روشن <تصفيق> نوجوان من را باش چی؟ گفتی کی؟ فقط اسم شنگول را شنیدم و اسم منگول را نه سپیده؟ کدام سپیده؟ نکند همان سپیده مداد سفید؟ زبانت را گاز بگیر دختر. مگر دنی به هرچی فکر کنی همان میشود؟ پراموش کن. تو چند لحظه پیش هیچ نام دخترانهای نشیندهی. بلش کن. امشب دو نفری بیشتر میچسبد. دیگر چه خبر؟ سامان گرمش است. یقه را راهی میکشد و توش فوت میکند. هنوز ننشسته کلافه و بیقرار است. ساعتش را از دست چپش باز می کند و میگذارد کنار حرم گجکی روی میز. سپیده ی شنگول هنوز پشت آن ستون پنجاه در پنجاه است و من مثل آن سالها نمی توانم ببینمش. سر فرصت راز قدیمیم را برای سامان فاش می کنم. زود است سامان مثل حامد چی گفت زده بشود. سفارش داده ای؟ چجور؟ هم برای خودم هم برای تو. مخی تو. من آشق خوراکیهی روشن فکرانم. حالا چی هستین این مخی تو؟ گویه نوشیدنی سردیس که سر میکشند و آشق همدیگر دیگر می شوند. گرمای حضور من است یا این بخاری که هی توی یقه پالی فوت می کنی؟ سامان سکوت می کند. از آن سکوت ها که نام دیگرش پیادهروی روی شبانه روی اعصاب و روان آدم است. داری به چه فکر میکنی سامان؟ با آن دوتا؟ آم... هم آره هم نه. آخر میدونی قصه دارد. خدا به دادم برسد. نکند سامان هم میخواهد مثل نجات برایم قصه بگوید. شما مردها آخرش ما رو میکشید با این قصه هاتن. پسرت را میدانم. نمیخواهد چیزی بگوی. سامان خودش صحبت را عوض میکند اینجا خیلی گرم است، بد جوری دم دارد، نمیایی برویم بیرون؟ اصلا پایه ای برویم آتولیه، لیلا و حامد آتولیه اند فکر کنم چهارتایی بیشتر خوش بگذرد. بس کن پسر، به قول نیمامان ما خودمان این کاره ایم. مثلا میخوایی بگویی امشب بهتر از دو نفره نباشد و از این حرفها مشکلی نیست اما یکی طلبت هرچه باشد چهارتایی من و تو و حامد و لیلا قطعا از چهارتایی من و تو و شنگول و منگول بهتر است مخیطات را سر بکشی رفته ایم امشب حرف حرف مرد خانواده است مرد خانواده امشب من را زن و بچه دار هم کردی میخوایی خودت رو به من غالب کنی؟ نه آبجی دوم به تله نمیدم. میگویند تلافی. اما این یکی واقعا توهین مستقیم است. ندا به هر چی فکر کنی همان می شود. یک وقت حالش را بگیری. بیچاره دلچلکین است. تلافی بکند بهتر است. چیزی توی دلش نمیماند و عوضش اداره هواشناسی روزهای آینده رابطهتان را صاف و آفتابی گزارش میکند هرچه باشد سامان یکی از آن چند هزار سامان سایت ثبت احوال نیست نیدا، مثل اینکه خدا خیلی دوستت دارد شنگول و منگول از سر جاشان بلند میشوند و از کافه می روند بیرون باز هم نتوانستی سپیده را درست ببینی به این میگوین تقدیر شنگول و منگول در می گم می‌شوند. های زرد محوته فرهنگسرا رویشان نور نمیاندازند. سامان سرش را نمی‌چرخاند تا با آنها خداحافظی کند. آنها دور می‌شوند. حالا وقتش است. وقت جبران گلستان. کوله‌پشتی‌ام را رو از روی زمین برمیدارم و می‌گذارم روی میز. سامان دارد به خطهای توهم توهم پانل پلاستیکی نگاه می‌کند. توی چشمهاش جانوری بینامونشان در حال ولگشتن است بچه گربه آمده توی کافه و سرخود بین میزها می کرد. سامان با چشمهاش پاهای کوچک گربه را تعقیب می کند گربه می زیر میز بغل که چند تا پیرزن دورش نشستند میان پیرزنها بلبشو می شود سامان می رود بچه گربه را بغل می کند می سر میز ما بچه گربه آرام است و خواب آلود کادوه پارچه ای را از کولم در می آورم. سامان تا از نوازش گربه دست می کشد و سرش را بالا می آورد، دو تا دست دراز می بیند که بسته مرموز را بالا گرفتند. گربه را آرام روی پاهاش می نشاند و بسته را از روی دست های دراز من بر می دارد. چشمهاش برق می زند. سامان حامد بهداد چشمهاش برق می زند. لطفاً بعدن بازش کن. سامان کادو را کنار و لیوان مخیتوش را میزند به لیوان من و یک نفس سر می کشد. به سلامتی خانم مهندس، برویم ملکه خاکستری یا نه؟ گفتم که حرف حرف مرد خانواده است. مرد خانواده به زن خانواده امر می کند، برویم یوسف آباد، خیابان سیوسف بوم. زن خانواده استثنان امشب تمکین می کند. ولی مرد خانواده بدنت همیشه از این خبرها نیست. از کنار دوستجان کتابخان رد میشوی. درست میبینم. دوستجان دیگر کتاب توی دستش نیست. کتاب توی تاریکیست و من نمیبینمش. دوستجان هم بالاخره کتابش رو بست و این یعنی که حالا کتاب سامان باز شده و بهترین شهرها شهری است که تو را در برگیرد شهر نوجوانی خارجی و ایرانی ندارد سامان قول میدهی هرچه زودتر این کتابها را بخوانی و دوتایی به نوجوانیمان برگردیم سرم را برمیگردانم و برای دوستجانی که دیگر کتاب نمیخواند دست کن می میدهم سامان دست تکان را می بیند اما تعجب نمی کند. دستم را که پایین می آورم، سامان درست جلو اتاقک که نگهبانی و حراست دستم را می گیرد. بچه گربه دارد پشت سر ما می آید. دستم را از توی دست سامان در نمی آورم. دست های سامان گرم است. دست های سامان به رنگ چشمهاش می آید. سبز سبز. سامان کادو پارچهیش را گرفته توی آن یکی دستش دستهای سامان دیگر آزاد نیستند یک دست کادو و یک دست دست من به قول شاعر رقصی چنین میانه میدانم آرزوست پراید سبز هاچبک درست جلوی در فرهنگ سرا پارک شده بچه گربه میآید آید لاستیک عقب ماشین و زیر صندوق عقب کز می کند. صندوق عقب ماشین جاهد همین نبود که گفتم صرف 912 خب بقیش؟ سامان سویچ را از جیبش در می آورد تا قفل مرکزی را بزند کادو از دستش میافتد روی زمین یعنی ممکن است کادو خیس بشود مرد خانواده چرا معطلی دستت را از توی دست زن خانواده در بیاور و بسته را رو از روی زمین بردار می چه می شود این کاغذ پارچهی به خودش آب بگیرد و آب به نوجوانی ما برسد؟ یکیمان مجبور می جلد دوم آرزوهای برباد رفته را بنویسد. نویسنده رمان اسمش چه بود؟ من که اصلا دلم نمی مثلا بالزاک بشوم. پس هرچه سریتر کادو رو را از روی زمین بردار. تا سه می شمارم. یک، دو، سامان خم می شود و بسته مرموز را بر بسته مرموز را میمالد به پلیورش تا آب وگلش پاک شود دکمه شیشه بالا بر کار می لیلا حتما ماشینش را برده تعمیرگاه و بهش رسیده شیشه را پایین می کشن. بچه گربه حالا آمده جلو ماشین روی جدول پیاده رو نشسته و ما را نگاه می کند. سامان تا استارت میزند صدای رادیو بلند می شود. به زبط نگاه می کند. ماشین جاهد حسابی نونوار شده است. روکش سندلی ها و دستدنده و رادیو زبط سیدی خور. اینجا تهران است. صدای... سامان بلافاصله سیدی را که از ضبط بیرون زده فشار می تو. صدای رادیو یک دفعه قط می شود. صدای آشنا شروع به خاندن می کند. آلبوم قدیمی مودرن تا کینگ. اولین قدم برای بازگشت به نوجوانی به این میگویند تقدیر. صدا در گوشم میپیچد. اینجا تهران است. صدای مدرن تاکینگ. بزن بروی ملکه ی خاکستری آقای درایور. خیابان سی 33 امشب نورانی ترین خیابان دنیاست.